دواتی از ثنا اینا اما بعد مدادرت گذاشته مسائل داشت پیرامون حدیث همان اولی عثمان رضی الله عنه در بحث روزی پیامبر صلی الله علیه و سلم بود هم همین روز بود هم فقری دیگه یکی دیگه عمرو بن یصل رضنی از تدرش که میگه دیدم عمرو بن اب حسن الله عز وجل سئل من وزير الصلاة آخر حد، أنا قبل أن يكمل موردة تفسير تفسير شرعي حد، ماشي؟ أزروا من حديث الطايموت. قال المؤلف رحمه الله عامل من جحيم المذلين عن أبيه قال شهدت عم ربن عم ربن أبي حسن سئل عبد الله متدين عن وجود النبي صلى الله عليه وسلم. دعى الصور دعى الخداع الصور من ما فتودأ لفظ أرسى من النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل على يديه من الصور فغسل يديه ثلاثة ثم أدخل أطلع... ثم أدخل يده في الصور ثم أذمها وانشافها وانكسر ثلاثة في ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثة ثم أدخل يده في الصور فغسلهما مرتين إلى المرقين ثم أخذ يدق الصوت ثم أتحر أذنه وأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم بطل بذلك. وفي رواية بدعت مقدمة بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قصا ثم رجع حتى رجع إلى كلا المثنى الذي بدأ منه. وفي رواية أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرنه لصما صورا صورا من سو. بله حدیث حبدالله ابن زیده ذاتی که سآل میشه در برای وزیر رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم بسیر میدم که تور همون, همون. تص عربي عربي. عربي. تشت خودمونه همون تست عربی و تشت عربی هر دو تلوقت عربی ما داری تشت و تست همون تازه و یک حاسی بزرگی که درش حالوشه یک پاسولیفر آب جا می گیره یا بیشتر از دقل از یکی بیشتر که آب که پاید داشته باشه به یک پاسه بزرگ قشت یا صف یا طور گفتی میشه ما در این حدیث ثواریدی داریم نکات داریم اولین مفاعده کرد این حدیث ما در یک پاسولیفر برداشت میکنیم اینه که طابعین و همچنین غیر طابعین هرست عجیبی داشتند یاد گرفتن سنت رسول الله صلی الله علیه و آله بودند. که هر کاری که را فرستاده بودند انجام میدادن، میدوند یاد بگیرن. حالا اضافه بر اضافه بر یاد گرفتن عملی شدی که یاد بگیرن. شما یکی دیگه ای عبدالله نزدیک رسول الله صلی الله علیه و آله بودند. میذم یاد گرفتن عملیش رو به ما یاد بده. یک استاد هم که یک دانشان موزی یک بچه یک فئال میدنه باید عملی به یاد بده نه تئوری خیلی مهمه ایچ علمی جوی عمل نمید گیره عمل خیلی مهمه علم وقتی به درسی بوده که حواش عمل باشه علم بدون عمل ذره گردش خب فردی دومی که ما در این حدیث برداشت خیلی مهمه دقت اصحاب صلی اللہ علیه اصحاب الله علیه دقت اصحاب رضی الله تعالی عن اجمعین خیلی دقیق دمی که وقتی که از رسول الله اجرش به روز رسول الله صلی الله علیه وسلم سؤال شد سجع به طور رسول می داشت کی یک کاسه از آب بیاره چون رسول الله صلی الله علیه و سلم در کاسه بودون میگرفتن گرفتن تصور دادن که چیز آبی در کاسه بیانن فایده اول این که حتی در چیزی که عبادت دید اونها رسول الله صلی الله علیه و سلم قلبوشو بوده چون رسول الله از ظرف تور یک ظرف خاصی اتفاده می کردن فرمودن که چیز گفتن اون صحابی تور رو بیارید نه دیگری تور این یک مسئله فقط در روایت آخر ما داریم طوری از صفر که همون مثل خودمونه، یک خاصی بسید. فایده یه سرومی و من در این حدیث اینه که خود استفاده صحابی برسول الله صلی اللہ علیه وسلم از ظرف طور یا خاصی که حجمش کجی که در استفاده در از آق این فایده علمی رو داره. که استفاده از کاتر حبب عدم اصراف آب بیشه چقدر رسول صلی الله علیه و سلم دقیق داشتن در این که جیس اصراف نشه نشه چون وقتی یه یک کاتر جلوان فیاس تحت خودمون درش رو رو و از اون آب با دستمون برداریم خیلی کمتر مطلب که زیر یک شیری دو باز بکنیم اولا هم جلید در امیلی آلاه سودات شستی آلاه سودات شستان دیگه از مست رو کنیسن رو دست رو کنید با از ای خدا می‌بینه چن لید آب حد از مرد بس سنت المصطفى صلی اللہ علیه و سلم کاملترین سنت دار کافیترین سنت دار فتوضع لهم وضوع النبی صلی الله علیه و سلم بس نیگویت این تابعی که عبدالله الله بده وضوی رسول الله صلی الله علیه و آله که رسول الله صلی الله علیه و آله به وضو گرفت، حالا چطور وضو؟ فأسف على يديه من التور فاکفه فأسف یعنی از اون آبی که در اون کاسه بود روی دستاش ریخت و دستونش را شست. فگذ على يديه طلع دستونش شستوش این فایده علمی رو که بحث شستن دست قبل از وجود گرفتن دوننت است سه بار شسته بشه هر چند که قبل از که بعد از خواب نباشه چون بعد از بیدار شدن از خواب گفتیم بحث تعر و وجود به بیگیره. اگر حالا زمان قبل انسان هم مثلا جو فلان بوستان کو فلان مزنه نجات دست داشته باشه اگر مزنه نباشه یعنی احتمال نجاست دست داشته باشه فقط اینکه چاره حالا بگین که وجود تابع باشه اصله سنت که داشته باشه اگر بگیم هم قبل ولی گفتیم هم بین تعوض و تعدیل تا با بحث چرا تعدیلیه علت داره چون گفت که چهی فا این اولایتی این باته یاد این نبنی دستش کجا خود چرا تعفو چون در اینجا این تحابی جلید غضی الله عنه دستور بیدن که یک کاسه رو بیران حبتی که دستشو در کاسه خلو ببره دستشو شست هنم وضوعی رسول الله سفر الله علیه و سفر ثم ادخل یدهی فى الطب فى التوری فمضمضه وستنشخه وستنسر میگه بعد ازون دستشو در اون آب فرو برد در روایه که دستش یک دستش در آب فرو برد دستشو در آب برد را می از و از و به یک که از که به دربینی فرو ببری واسی دستی گفتیم اسم شاق و دست حارس و دست چپ و اسم به تلاتی سه بار با سه بار آب برداشتن آب رو برداشت مزمزه کرد استنشا. سه بار این کار رو تکرار کرد سنت مستحبه که برای مزمزه و اسم سه بار این کار انجام میگیرم ثم, يل... ثم أدخل يده في الوضوء. ثم أدخل يده في الوضوء. درب يكتف التور. وضوء أضووس كذاش بزوجين. أنتم كذا. دست شو؟ درون آفرومي بره؟ فغت له وجهه ويديه فغت لهما المرفقين المرتتين. الرضى الروسية. ثم غت وجهه ثلاثا. ثم أدخل يده في التور فغت لهما مرة ثانية إلى المرتتين. الا این که در مستعماه هم دست فقط روی وجه و یادیگر فقط لحوم است. میگه دست، میگه که دست آشوش در آب کوری برد، بعد رو میشود، بعد یه دست، بعد دو دستش را تا دوتا تا دوبار دست رو میشود. از این حدیث این است که میگه که شوستن اعضا دوبار دوبار هم جای ما گفتیم سه بار دوبار بار است، دوبار دوبار جای یک بار یکبار آدم جای است. و این هم نه حدیثی که چی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم درستاشون تا مرفقشون دو بار شستند. امام ابن حجر روایت یده را ترجیخ میده کنم از خلیه دروفی الوضوع فقط لوجه فرو بردن را دو دست را بر و دست ترجیخ میدهد. یعنی اون دستی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرو بردن و با آن آب برداشت که صورت خودشون رو روایت یک دست را ترجیح بردودست چون هم یدهی داره هم یدهی داره یدهو جاید اینکه انسان هم با وجود این ترجیح روایت خواب چیه این از حال یدهو در روایت مسلمان هم روایت تحمیه اومده یدهی اومده جاید اینکه انسان با یک دست مهم مینکشی آف بسیارن برخورد بکنه و بسیارت شسته بشه خب ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجله بحث ما تكرر فأقبل بهما وأدبر إمام تقي الدين شيخ يقول ان بحث الاقبال والادبار من امور اردافيه كاهي ده عقب بردان اقبال لوفتي بيشه كاهي به آوردن اقبال اقبال به آوردن داخل از خوش و همچنین از و اقبال اقبال اقبال بی ایمان بقفه هرچن که اقبال به جلوب در نظر خودمون اقبال چی چیست؟ این که در در اقبال بی و ادبر در از حالا این سفر در لغت عربی و اتشهاد میشه به اقبال از که همیشه دوست داشتن اقبال را تقديم بکنم بر ادبار خرچنگ کنم بحث میده کنم مهم یه نیکنم ما در اینو بدونیم که فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت فعلی تر چرخش میده این بحث اضبال و اضبار یک که بدأ بی مقدم رعته مقدم رعته جلوه ترش جلوه سرش آغاز کرد حتى ذهب بهما إلى قفا ففي الروايات ابوالعبار را هر چن که در روايات مختلف شده به مشرف شده هر چند که اكثر یک بار افواس اغلب یک بار اجبرا این جاها در حج متوسطی که این روايات سریه این مشکل را حل میکنه برام که نوع تکول و دستور بده از مقدمه تا جلو آغاز حتی ذهب بکعه الى قفا. خواه پشت سرش. قفا. قف پشت سرش. تم مرده همه حتی رجعه الى المکان اللی بدعمه. تا این دوباره دفتش برگرد و به جایی که ازش آغاق شدن. خب. در قلبای که هم در نظر بفاری اومده تم مغتله تا جلیدی الى الکعبه همچنین در صحیح مسلمه بحث كعبين و بعد مرفقين نحن ممتعدين و آخر مثلا بكثيرت و بعد المدين أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا لكماء من طور من صفر يا الله هردو تجاوئيز در لغة عرب ما رسول الله صلى الله عليه وسلم از طور فس بعده قفت بثور بطور نقول که چون می دیدیم که حتان رسول اللہ علیہ وسلم اخرجن له ما انمنطور چون ما برای رسول الله آبی از تو رو بردیم در این خواستی خواستی از مزید این صحابی جلید بازم در خواستی در خواست آبی بکنن از یک طور ما در برای مدشه سر گفتیم اختلافاتی درشت یک ثومه دو ثومه این حدیث تعییدی بود برای این که من از اول سر شروع شد و این صنکه رسول الله صلی الله علیه و آله که شارح متن قرانه که مفسر رو تبیین میکنه و انزل الیک الذکر لتبینا للناس ما انزل الیه الكتاب تبیین کمد رسول الله از جلوه سر اوقت چنان تو پوشست و هیچ حدیثی غیر از رسول الله صلی الله علیه و آله در مفسر تمامی یسر ثابت نیست و اگرم یک سقم سری مست کردند جلوه سرشون مست به عمامشون هم غرور دادند یعنی وقتی که از جلو سر شروع کردن از پیشانش شروع کردن از جلو پیشانش از فاهای جلوه بعد از اون با دستشون غرور دادن که عمامشون به اقف و دوباره به جلوه بردن پس با وجود لباس پوشیدن با وجود پوشیدن عمام رسی الله روی عمامه هم مهده چه حکم داره؟ الله اعلم گفتیم جاهایی هایی نیشه ترکیم بحث سعب خود و بحث فعلیل بارد شاید انسانی با خودش بگه بحث مزه، بحث سمزیف خواک کردن، خواکی لیکن چه حکمه چی داره که رسول الله صلی الله علیه و سلم دستشون روی عموش کشت، الله فعله نگم که چی سبهن، الله فعله چون رسول الله چنین کاری نده؟ ما انجامی لیکن اختصار و دوستان کرده نبیدیم که پاپه هسته هسته یک رو نیست. نیست خلاف سنت مصطفیه هسته الله در باره مصطفیه هسته ما در گفتیم که روایاتی اومده در سبار شازه از روایت چمان مولای رسیم آزاد چرا شازه گفتیم چون غیر ممکنه. که حمرانی که یک بار از عثمان دیده این فعر را به دو طورت نقل بکنه. به دو طورت نقل بکنه. یک بار میگه یک بار این کار انجام دادن، یک بار میگه سه انجام دادن. خاطر همین، امام ابن موندر و همچنین امام ابو داود ترجیح میدن که روایت عثمان در یک بار مست کردن سر غاجه و همچنین علامه ابن حجر حد کن که ابن حجر جاهایی میگه اون یای بی صفر و جایی دیگر میگه شالزه اما در روایت دیگری که امام ابو داوود رضی الله رحمه رحمته الله دارد سنن اشمیاره اذربی اذربیح ان معرز اذربیح فلو بحثمون شديد من قصير وقتنين كيف تأخذ رواية عسوان فأمر رابيشا محمار لكن الآن رواية ربيا كيف تدلو الفيديكونا نشوف أيها سير الدبور ما كذا كان رسول الله عليه وسلم يأتينا ساتمية ومسح برأتي مرتين ومسح برأتي مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقزمه وبهدنيه کلکی که مع به راه و بگوونه هم آخرش که میگه باهاششونز این حدید شماره تررییسی در نزد ابو بوده و ما ماللبانی هم تحتینش میکنه آیا این حدیث دلالتی بر مسهبر دوبار مقدم ترمیده یا نخیر خیر شن روايه عثمان رضي الله عنه التاريخه نفسها حفيه بمدحه الراس مره واحده يكبر رواية عثمان و ان روايه بمدحه الراس مرتين ما ثم بالمقدمه یک وقت المؤخره ترشوا قاص یک بار اطاب برد، یک بار جلو برد. منظور از دوبار اینه. و فکره که کسی، وقتی که به طور کل میبیان، که سرش رو حدیث کرد حم... حدیث نحمان، تو کچی فهمت حضراتی مرتاً واحده. ولی وقتی که اقبال و اقبال من، اقبال بیهما و ادره بیهما، دوبار حساب کرد. فهمیدیم، بحث مطلق، همچه بر مقید. همچین برای هناك ترسيح الظهور أيمان في القلصة ترجيح ترسيح الظهور أحمد بن حنبال أبو حنيف بن حليم مالك رحم الله عنهم أجمعين بل للمعين ذلك رؤية الحديثة الله البلد رحمه الله والسلام فتح الجمهة روايات روايات تبار مكتر بن منگو فندریه کا مطلب انال مولدی داشتینش میکنه از طلبه هاش شیخ سلیم هلالی و اعلاد علماء چو رائے ابن حجر بقول ابن قد ابن رجب و دیگر ائمه فقط به شذوذ ایشان همچنین امام ابو داوود امام ابن منذر هم باطن خود با وجود این حدیث به پر ماخذ قرار کلی حدیث معدود در کش، چون بحث مخالفت، مخالفت استقبال، اوتاق من جمهور رضوات مرهن میکنند. یک راهی از حمران، یک راهی میان مخالفت استقبال جمهور چون حدیث از یکی از دو نفر میگی، فمذ حضراتی دلخواه. یک نفر. یک جمهور و الحمراء رواية كرنات وصبرة جناتي يكون مركز يوم دبوا شكله ليش؟ قول الجمهور قول أكثرية مقدم مجتمع في مخالفة الثقة لمن هو أو ثق من أو لمجموعة الناس قاد ثلاثة مخالفات بكتيك بكتيك البسطاترة ثلاثة غير مجموعة أصدقاء إن جمع مجموعتيها في شيء سكتارا سكتارا حس. بعدوش میشه تا یه بار دوبار یا چند بار. هم من بیام یه کوچه نفر. یکبار کوچه نفر. یک بارم. دلیلش یکبارم که کوچه نفر بود. که کوچه نفر بود. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بحث اذنی مس داشت کردن بعد با هم دست گوشا شنو حدیث مس اذنین در روایت ابو داوود شماره از ابن بی داریم یک که رئیف عثمان عن الوضوء فاخذ ماء fmt حضراتی و اذنی فغسل بطونهما و ظهره واحدة عثمان وزور گرفتن بعد سرشون مستیردن بعد گوشاشون داخلش و بیرونش داخلش و بیرونش مردت واحده. این هم بر روایت مسحه یک بار از حدیث حمره این حدیث ابن امی مولای کرد رسیمان الله حدیث بعدی در من داریم شماره الله إنم خيشي تبشتر تبشت سعيد مثل جوشها ثم مذهب رأس و باطنهما بالسباحة باطنهما سباحة تكوير داخل جوش وسباحة وظاهر وظاهرهما بإبخامه إن إبخامه وظاهرهما يرونش تبشت جوش با چه با بو إبخام في داخل با بیرون گوش بباشید با افحام با انگشت شرط با انگشت شرط و داخل گوشت با انگوشت که این بس دقیقه مستقید خب کل الان اون چیزی که ما تابقه حال داشتیم در این دو تا مسئله یه چیزهایی که واجبه در حضنیت ششتن صورت همراه با بینی و دهان که گفتیم هیچ حدیثی نیومده که راستان سورت تا را پشوزه و مزمزه و سنچا نکنه بخاطر همین مزمزه و سورت جز واجباتی بود از جمله ششتن دست ها تا مرتقه این سومی چهارمی مست کردن سر همراه با گفتیم الادنانی من باید حدیث ابن او باید پنجمهش هم شستن پاها و کعبه پاها و کعبه شیش و منم موالات این که مدت زیادی نگذاره خبنی که بحث نیکه وقتی که بوضوع گرفتی بلپرد خونت موضوعی تا دفت و باید آب یک مطافت سو جانی نباشی برید یک مطافتی و مجبور بشید نه اگر موالات خط بشه یعنی اون مطابقت خط بشه، تحت خوش. بعد دوباره آمده کاملش بکنی، نه نبشه. باید موالات باشه، موالات یکی از شروط تایمی باشدن. نه شرط نید خوش نه چون هوا خوش باشه، همین که آزم دهتشو خوش شد. نه بعد مسافت فیلانی هست که بین اعضار شدن مدت فیلانی نبیزارن. هفته من حالا این مدت مقدارش شطوره دیگه این بحث داشته ها دوباره شخص برنیگرد هفته من ترخیبه که مثلا صورت قبل از صورت قبل چی میشه صورت قبل دستان و دستان قبل از سر و سرم قبل از سر. با درسته؟ به ترتیب اول صورت بعد دستان بعد سر و بعد با. این ترتیب است. یک داره. کسی اومد وزو گرفت. وزو گرفتم. سورتم شستم. بعد از سورت دستم زیر آب چپ شدم بعد دست راست شد. رفتم سر اومد کردم. پای چپ شدم بعد پای راست شدتم. وزو دارم ندارم. دارم. همه کسی ندیگه نداره و نداره چرا؟ رواه ما رواهی اجمال، اجماع اجماع اجماع اگر کسی دست چپ را قبل از دست این همچنین امام نبوی میکنه این اجماع نمول امام نمولده و امام گفت فقط الان به طور خلاصه از که ما اشهد ان لا اله الله محمد عبد الله اشهد ان لا اله الله محمد عبد الله این روایت بخاری و در روایت الله و لا له و اشهد انم محمدًا عبده و رسوله، لنجه داشتیم دو عبد الله و عبده و رسوله، اللهم اجعلی من الثوابین، مجعلی من الظاهرین این که با هید یادی، یعنی اللهم اجعلی من الظاهرین، امام والبالی تحتیلش بیکنن اجل قادش که هم واضحه که رسولات این فرمایات که ارهای همه هشتره بهش برش برش برش بار میشه، بهش میشه، هر ذریقاتی ورد میشه عجله سنتی بعد بزودی نوشتی بهش سبحان الله و الله الله ایک نوشته میشه مهر زده میشه اون نمیشه خوندن از اون نماز و اونم با خشوع کامل. بعد از جل المطالی که داشتیم، مرمزه ورسنشاخ با دست راست، حدیث بخاری داشت. و این که مرمزه با یک کف دست بشه. مرمزه ورسنشاخ با یک کف دست بشه. از جمله سنت هایی بود، این که انگوشتان دست و پا تخلیل بشه، با انگوشتی و میون آنها کشیده بشه، خستند، جاهایی که لحر کوس جم میشه، جاهایی که کوس جم میشه، دقت دقت بشه که لحر آب بهش برده، چون که این کنار مردی پیدا کرده و خیلی شروع خورده او خیلی آب نمیره، هیچ وقت براش انگوشش نیکامی جام بکنه، که این آب پس برده و تخلیه بکنه انگوشش رو. دلیل؟ بحث انگوش نم، بحث انگوش نم بحث انگوش وارد میشه ویلونل اعقابی من النار ویلونل اعقابی من النار جز خلال اگر آب دیرشت درسته، جز این در خلل که روزه هست جوابش میشه درسته، بحث، بحث بزوی کاو، یعنی چون اونجا، چون اونجا ظاهر و واضح نده به توجهی نداشتن چیزی که جروب نمیدیدن اونی انسان به پشت پاش نگاه نمی به خاطر همین این در پشت قاها آفد. لیکن اگر انسانی صورتش رو همین آبی زد دخش رو آب زد. بیر دستم آب نردید بادم روز تهدید واقع میشه. گفتیم تحدید بزرگ به علت چی؟ به علت این که و اصلاح صلاح نمازمون برمیگرده به چی؟ صلاح وزومون. اگر وزومون نادرست بود نمازمون هم چی؟ نادرست میشه. پس شدت این امهاب به خاطر چیست؟ قصاد عبادات تأثیرش از همون وزوز از جمله سنت هایی که ما داریم که پاها با انگوشت کوچک، کنصر انگوشت کوچک، تخلیل بشه با انگوشت کوچک تخلیل بشه نیوسته انگوشت ها برو برده بشه که آب بهش برات حالیت هم در سنت هم افهوی داریم شماره 148 از جمله سنت کنصر کنصر کنصر به خمصوری یا خمصوری هر دوتا در غطر رو بخونده بشه از جمعه سنت ها مثباق زدنه لولا ناشو قایل امتی در امرتو عند کل وضوع و در رویتی جمهور عند کل صلاح هر دوتوشن هم جز سنتی هم در اینغام نمان از جمعه سنت ها شستن دست ها قبل از بارد کردن از دست قبل از دستشو چلا از خواب بیده رو شده باشه چه نشده باشه مثل همین حدیث کنان داش آب داده شدید و بیشتر بعد در آب بره. از جمله سنتها در استنشاق مگر این انسان روزه باشه این خلاصه نکه سنت روز. من حدیث هستم. من حدیثی شاید. بشن. آیا شرایطی صلاح مشكل. ف خب. انا اشهد ان لا اله و است که عایشه رضی الله و عطا حمسر رسول الله صلی الله علیه و سلم از ایشان خواهیت میکنند عایشه مواظب حرکات رسول الله دارجانم دیدن که چه کار میکنند دنبوی شانه کردن سرها و در تخارت جنالا چه غسل و چه وضوع و در همه کارها میدیدن که رسول الله با دست راست شروع میدن اولا تیمون افت خودش در لغت عربی با ابدا و آغاز کردن با دست راست میاد. يعجب یعنی خوشش میاد در الله علیه و سلامه. پس خوش از این خوشی در طهارت علما سنباتی همون رو همون صدایی که گفتیم ابن منذر و نوین نقلی کردن اجماع بر اینکه چی؟ که دست چپ یا راست شستن بعد از یا بعد بعد از اون دست شب خوستن سنته و اگر کسی دست شب قبل دست راست شد درسته بخاطر اینکه رسول خودشون داشتن که چی؟ بخاطر راست آواز بود یعجیب بود رسول الله عم نکردن اول دست راست بعد از سب از عمل بهمون من نشون دادن نشون ام نکردن به خاطر همین شب علمان میگن که چی؟ علمان میگن اگر در تچپ قبل راست خود، حضور درسته. تنعون همون کشتن نعل یا سمپایی. حالا به کفشم گفت تجل ترجل ترجیل یعنی شانه کردن از افر. طهور با ظن مطا تهارته. و گفتیم طهور با فتخش آبی که با ان ایجاد اجاز میشه. لبز و فیشنی کله عام لبز و فیشنی کله عام در تمامی کارها لیکن از این عموم تخصیص میشه استثناء میشه چیز بارشونه همی درشونی پاک کردن نجاست و چیزهای دیگری که الا از رسول الله صلی الله علیه سلم الله إن شئ ذيك جمهور عالمي، جم جمهور عالمي يعني. إمام ابن حجر، شنيل نحن كنا، كإن حديث، ولا بد كان، دار إن حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه يعجبه الديام. إن السمراء همیشه در همه کار نبوده یعنی کانه در لغت تحریف به استمرار همیشه نمیدن چون در, در شعنی کله در نجاست در وارد شدم دستجیب و خوبهای و با دست راز انجام نمیدادن و با دست راز نجاسته چپا نمیکنم و با پای وارد شدم پس این کانه همیشه در همه کارها نبوده استمرار نبوده غیر از این لبز و پیشنی کله داریم با واب که این شعنی کله برمیگرده برمیگرده به تیمون و داریم بدون لفظ باب فی شانی کله فی حالا اگر و فی شانی کله باشه بعد در همه کارها اما بدون واو چه معنا میده با اِصات واو این شعنی کله برمیگرده به تعجب بهعجاب برمیگرده گرده به اعجاب یعنی یعنی اعجاب داشتن یعنی دوست داشتن در تمامی شعنش با دسترات آغاز کردن از کوشیدن دمپایی و شانه کردن و سهارت یعنی این شعنی کله به این ستا برمی گرده. این شعنی کله بدون واو به این ستا برمی گرده. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم ایز داشتن با دست راست یا با طرف از راست آغاز بکنن در پوشیدن دمپایی در شانه کردن، در تخارت و این کار را رسول الله و به طور همیشه در سفر و حضر در عضو رو غیر عضو همیشه به طرف تخار در این کارها با دست راست آغاز بکردن با طرف راست آغاز بکردن و چه دست باشه چه پا باشه. حالت میکنن اگه حالت این معنی کار کار های این حالت کنید حالت را راست را را کردن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تشد دفعه کشیده شانک و تضور في شعنی کلی یعنی یعجبه و هستی امون شعنی کله یعنی در این چیزها در تمامی دم پیشن در تمامی شعناشون در تمامی حالات پوشدن دمپایی پایی در تمامی حالات پوشدن دم پایی با دست اغاز بخونم راست این روز نگر به حضر باباشی دم پایی بابایی بله <تصغر> دنبایی با پای راست تقریم و ساکر مثل عربی انت عبدی و انه رب بکی خب ما گفتیم با اثبات باب اصل بر که با دست راست راست بشه و افتثنان در چیزهایی که از رسول الله صلی الله علیه و آمده که با دست چپ یا با طرف چپ آغاز کردن لیک آیا میشه قیاس زیرم ام قیامت مثلا به ساز به باب سنت با دست یا با دست چپ ها گفتن چون ناپاکی پاک کردن کسی پاک کردن با دست چپ بعضی دیگر گفتن به خاطر لا ضرر لا اگر با دست چپ این کارو بکنی کسی با چپ عادت نکرده دهنشو خونین میکنه دهنشو خونین میکنه در نسیجه از باب تصیب از باب خوشمون کردن با دفت را بکنند با دفت را با باب تحبیل گرفتن و باب این که دفع زرست با راست راستان هایی که کفتن با دفت جرد که چیز از باب دفع ولی که ما میتونیم هر دو تار تباید با دست چپ اول بکشید بعد آب تو جهنمان بدنید بعد برای با دست راد راجع بین دوتا دو خود اولیش تنظیف باشه توبیش قطیب باشه که خوش بکردن باشه جاهایی میشه جمع با در در آسان آیا هم یک از سوال چند تا سوال هست بله بعد مطرح بشم یک ساعت میشیدم بعضی ساعت رفت چپ بشم باید یا دست ساعت باشم آیا میشه گفت تنده که در سراف باشد چون رسالنها سارت هم دویست داشند هر کاری با درست راست آیا میشه استضلاق تهیه باید عصب با دست راست میشه موبایل هم نمیشو را باید با درست راست و را همه کار میخوای وارد مسلح باشی با درست راست همه چی با درست راست میشه بعدی گفتن اصل عامی که باید درست راست باشه هر کاری که باشه مادامی که کار بدی ناپاکی و نمیدونم جا رفتنه به جای ناپاکی اصل برای اینه که بازه کنم شد دیگر گفتن که یهود چون در دست براسی بیشن و ما امر شدیم بزن خالفت یهود ما بعد دیگر گفتن که خب از یهود بکتر کمیت با دفت چپ پس با مخالفت مقالفت کنیسا حالا کدوم یکی بیگیری؟ این امر بردیگر در به مسلحت خودش هست به خودش هست به من خودم ثابت شده هر وقت دفت را هر وقت دفت را شد ببندم زودتر من دست راست مضاحب نوشتن کاری که من میکنم مثلا 24 ساعت یا بره کامپیوتر دست گیر میکنه روی میز یا نوشتن مینیمایز دست سنگینه دستم صبح خسته میشه چون کارو نیست ساعتم سنگینه حالا خودم یک گیرم چون اتقا دا دوست داشتن دست راست باشه بعد دست راست منم بذارم من اذیت بشم یا اینکه من مخالفت با بکنم و دست شب بعدش و خودم راحت بکنم ساعتم بیشتر برا عمرم این مطلحه هتاست. خب. این برمیگرده به اجتماعات خودشفت و هیچ حرج و هیچ انکار دوشفتی. بسیل بس دیست داشت. بسیل الله تعالی آزام دیست داشت. کاراشون با درست خواست آزام. اگر خیلیت میبینید. کار خیریه کار خوبیه. چون کار خوب را رای توانم درست خواست آزام کرد. با درست خواست آزام. این مجلس اومیم من آبی در بود. خواستم پذیرایی بکنم از اینجا شروع بکنم از دست راستم یا اینکه اول بی بزرگترمون بعد به بقیه. سنت کدومه. یا خواستیم وارد مسجد بشیم. خواستیم وارد خونه بشیم. اول بزرگتر یا اول دست در راست. بلپرد این که بل این حدیث شنی کله همه ایک هر هرچنکه من خودم اعتقادم این این یعنی همی بر اینه که این شعنی کله در شعولی که از رسولات از ثابته شعنی میتونیم بگیم که این سنته یعنی بالفت ها از رسولات نهاشته و نبوده همین که بازر همین نمیتونیم بگیم که سنته نمیشه رسولات از رسولات نمیشه قیاس گرفت نمیشه گفت این سنته من اتفاقا دارم بر اینه این شریعتی کله در عهد تعبدی کارهایی که اصلا میتونستن انجام بدن لیکن کارهایی که نتونستن به انجام ندادن امر تعبدی درش وارد نمیشه اتفاقا حالا بحث طب میشه در عبادات قیاس گرفت بحث بحث در در عبادات اصلا اینه که قیاس گرفت نشه بدانی که شرط ورود به خودش داره لیکن الان مسئله که ما مطرح کردیم شبیه خاصیم ورد بشیم یا خاصیم حدیرایی بکنیم از بزرگتر شروع بکنیم یا از دست کابر بشه داریم از بزرگتر از از بزرگتر بعد از دست راست دو من دوتا حدیث راست کنم ما نقص حديثه ذاك حديث أول حديث سهل بن أبي حسنة سهل بن أبي حسنة ميكة عبد الله بن سهد ومحيطة فاقا بخيبار خرج إلى خيبار ثلاثة ميكة فذهب محيطة ليتكلم وهو الذي كان بخيبار وما دار رجل فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم سکبیر کبیر برادرش همراهش بود هجبوت حویصی هم رو هجبوت برادر برادرم خیسه هم رو هجبوت چون اول بزرگتر این بحث از که کردن کد در یک مجله هم متاسفانه من خودم دینم در که من قطعا مثلا یک جوری نشستیم در نزد ولاد بی که مثلا یک کس مثلا نشید و دکتران داشته باشه باش تاکیان داشته باشه اون شخصی که احترام احترامو کوشید صاحب کی داد نه احترام ورگیش است نہ احترام است که دعوا نه احترام اون عظمتی که شده از اول میاد مثلا ردش میکنه میگه تو نفهم یا تو فلانی یا تو اصلا نمیری تو با میری مدرکایی بکنی تو با فلان بکنی میاد مثلا با الفاظ تند اون شخص مدل احترام به بزرگتر با حس بشه یکبر کبر بزادن به احترام بزرگتری که همراهش است که اول بزرگتر بعد که بزرگتر جواب داد تو صاحب گفتین الله در پشت احترام به بزرگ پرالله در صحبت کرده میمونم در مجلس در وارد شدن مسجد. حدیث دیگه داریم در صحیح الجامع، اون حدیث در ابو داؤد شماره چهارهزار و چهارصد و بیست یک قطنا در تصحیح چهارهزار و چهارصد و بیست یک قبول نیم کنتایج حدیث بعدی در صحیح الجامع داریم شماره هشت در ابو داؤد کرست الله صلی الله علیه و سلم چنین میفرمایند: آراني في المنام أتسوق بالسواك یکی دیدم در اوت مسواک ستنم فجاءن أحد احد فاکبر من الاخر گفتم مالكم مدن یکی از یکی از دیگری بزرگتر بود تناولت السواک الاصغر منهما بيك السواكره بدن اون كت کوچکتر بود دو تا مهر بودند مسواکم میگدام بدن كت کوچکتر بود ثقيل ليش گفتند در طور کبر کبر از ذوکر بگو بعد پس در مجلس آبی خواستی بیدید تجیرهی خواستی اول خضورتر فعدت درات وارد مجلس خواستی بشید وارد خونه خواستی بشید همیشه تکریم خضورترها حالا در هر کاری باشه جز سنت مصطفی این حدیث حریفت فبدی این از لفظش اونم از فعل خود رسول الله صلی الله علیه و حدیث اما یک سوالی میشه بعضی جهان ما میبینیم حالا دست راته تکریمه با دست, دست, دست, دست راست بدیم با راست برداریم سالی ما متاسفانه میبینیم همیشه من یعنی 90% در بچه ها منادر کرده، هر وقت چیم با دست شبه. چون در ترس دست راست من وقتی بهش دست چپش ترازگیره با قاطعه همی با دست شب هست میشه چه ای که محدث مدین محدث میشه خب اطلاق فتواش بر اینه که حرامه با دست چپ گرفتن و با دست, دست راست گرفتن به دلیل حديث ابن مسعود صحيح، شماره 1566. جلد 72, 78, جلد 72, 78. قال الله صلى الله عليه وسلم في المئذنة: ليأكل أحدكم بيمينه، وليشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه، وليعطي بيمينه. ليشرب، ليأخذ، ليعطي، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله، ويعطي بشماله، ويأخذ بشماله. گرفتنش، دادنش، خوردنش، آشامیدنش با درست و ما میدونیم که امر رسول الله اثرین که بر بودید. دو قومت مشابهت با شیطان واجب است. برقید مخالفت با شیطان واجب است. سنت شیطان چیه؟ با دست چند. پس ما باید برزوز شیطان چیه؟ با را راست این بخاطر هم که عبدالعان شیخ امان از درست دلیل برس یا از این دلیل استنباط انباد که. با دست راست گرفتن و دست راست دادن واجب همچنین خوردن و آشو بیدن و دیگرش دادن و با دست چپ حرامه دست چپ حرامه شده شیطان خب این خلافه بحث تیمون و بحث حضور گرفتن و این حدیثم خب ربتش به مباحث قبلی بحث آغاد کردن با دست راست بود صدا و صل الله علی محمد و علی علی بحث.